سلام ارزو کنم خدمت شنوندگان عزیز. من شریفی هستم. به این قسمت از پادکست حقوق من خوش آمدید. در این قسمت در خصوص استعداد دعوا صحبت خواهیم کرد. سوال می شود ما علیه یک شخصی دعوایی رو ترخ کردیم. وقتی مراجعه کردیم به تادگاه گفتن این دعوا درست ترخ در نشده است. شامی توانید آن را مسترد کنید یا اصلا خودمان تسمیم گرفته ایم که این دعوارا در وقت دیگری در بکنیم آیا راهکاری وجود دارد پاسخ مثبت است چه انجایی که به ما میگویان این دعوارا سعی کرد نکردهایی چه انجایی که خودمان اصلا تسمیم میگیریم که بعدا این دعوارا را به جریان بیاندازیم میتوانیم دعوار خودمان را پس بگیریم سوال آیا به کسی بر میخوره پاسخ خیر سوال خُب ما برای این که اون دغدغه رو ترپ بکنیم یه سری پول دادیم. گفتن، هزینه دادرسی باید بدید، هزینه دفتر خدمت باید بدید، هزینه اوراق باید بدید. اون پول را به ما پس میدن، پاسخ خیر. چون شما دغدغه رو ترک کردید، به جریان نفوذ داده، به شو به جای ترسیگیری ایجاد شده، حالا شما پشیمان شده اید، دیوانه ای، تدبیری اندیش کرده اید. یا اصلا مشاعر گفتند که دعوارو درست تهنه کرده اید می توانید آن را پس بگیرید دیگه هرچه هزینه کرده ای ما هزینه ها به ما بازگردانده نمی شود پس ما می توانیم دعوارو پس بگیریم. به این می گن استرداد دعوا به چه شکل است؟ شکل خاصی ندارد ما درخواست خود را می نویسیم و با آن شو به می دهیم. خب به چه شکل هست؟ نامش چیست؟ می گویند لایهه که شما می توانید به قسمت مربوط به لایهه مراجعه بکنید. پس ما یک لایههی می دهیم و در اون لایهه تغاظا می کنیم که دعوی ما مسترد بشود. تغاظای استرداد دعوی رو مطرح می کنیم که در پیه این تغاظا دادگاه هم به صورت کلی ارز بکنم دعوی ما رو فعلا رد می کنم. یعنی می گوید دعوی مسترد شد.